عشق از الیف شافک ترجمه ارسلان فسیحی با صدای اروینه محمدیان تهیه کننده دامون آذری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس سنگی را اگر به رودخانهی بیندازی چندان تأثیری ندارد. سطح آب اندکی می شکافت و کمی موج برمیدارد. صدای نامحسوس تاب می آید اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موشهایش گم می شود. همینو بس. اما اگر همان سنگ را به برکهی بیندازی، تأثیرش بسیار ماندگارتر و امیغتر است. همان سنگ، همان سنگ کوچک، آبهای راکت را به تلاتم در می‌آورد. در جایی که سنگ به سطح آب خورده، ابتدا حلقی پدیدار می شود. حلق جوانه می دهد. جوانه شکوفه می‌دهد، باز می شود و باز می شود، لایه بلایه. سنگی کوچک در چشم به هم زدنی چها که نمی کند. در تمام سطح آب پخش می شود و در لحظه می بینی که همه جا را فرا گرفته. دایره ها دایره ها را میزایند. تا زمانی که آخرین دایره به ساحل بخورد و محو شود رودخانه به بینظمی و جوش و خروش آب عادت دارد دنبال بهانهای برای خروشیدن میگردد سریع زندگی میکند زود به خروش میآید سنگی را که انداختهای به درونش میکشد از آن خودش میکند حزمش میکند و بعد هم به آسانی فراموشش میکند هرچه هرچه باشد بینظمی جزء طبیعتش است حالا یک سنگ بیشتر یا یکی کمتر اما برکه برای موج برداشتنی چنین ناگهانی آماده نیست یک سنگ کافی است برای زیرو رو کردنش از عمق تکان دادنش. برکه پس از برخورد با سنگ دیگر مثل سابق نمیماند، نمیتواند بماند زندگی الا روبینشتاین هم از وقتی خودش را شناخته بود مثل برکهی راکت بود. داشت به چهل سالگی پامی گذاشت. سالها بود عادتها نیازها. و سلیقهایش تغییر نکرده بود. روزها روی خطی مستقیم پیش میرفتند، یک نواخت و منظم و عادی. به خصوص در بیست سال اخیر همه زندگیش را جز به جز با توجه به زندگی زنوشوعیش تنظیم کرده بود. همه آرزوهایش همه دوستان جدیدش حتی کوچکترین تصمیمهایش هم به این وابسته بود. یگان قطب نمایی که سمت و سوی زندگیش را تعیین می‌کرد، خانه و خانوادهش بود. شوهرش دیوید دندانپزشک مشهوری بود. مردی فوقالعاده موفق در کارش با درآمد بالا. پیوندشان چندان عمیق نبود، الا متوجه این مسئله بود. اما اعتقاد داشت در زندگی مشترک، به خصوص در زندگی های مشترکی که مثل زندگی آنها اینقدر طولانی شده، اولویتها چیزهای دیگری هستند. در زندگی مشترک چیزهایی مهمتر از اشق و علاقه هم هست، مثل مدارا با یکدیگر، مهربانی، تفاهم، احترام و غیره. و صد البته از همه مهمتر چیزی که لازمه همه زندگی‌های زناشویی است، بخشندگی. اگر ازتان برمیآید که باید بر بیاید وقتی شوهرتان اشتباهی کرد که ممکن است بکند، باید هر جور شده ببخشیدش. عشق و علاقه اگر هم نباشد چه اهمیتی دارد؟ عشق خیلی وقت بود در فهرست اولویت های الله جایی آن پایینها مانده بود. عشق فقط مال فیلم ها بود یا مال رمانهای تخیلی. فقط آنجاها بود که دختر و پسر داستان می توانستند با عشق افسانهای برگرفته از قصه ها هم دیگر را تا حد مرگ دوست داشته باشند. اما زندگی زندگی واقعی نه فیلم بود نه رمان. در فهرست اولویت‌های های الا بچه هایش بالای بالا قرار داشتند. دختر خوشگلشان جانت در دانشگاه درس میخواند. دو قلوهایشان که یکیشان دختر بود اورلی و دیگری پسر ایوی درست در مرحله بلوغ بودند یک سگ دوازده ساله رتریور هم داشتند سایه وقتی به این خانه آمد هنوز توله‌ای کوچک بود از همان روز رفیق و همراه همیشگی الله در پیاده روی شد هر چند سایه که دیگر پیر شده، چاخ شده، چشمهایش کمسو و گوشش سنگین شده بود، داشت به آخر خط نزدیک میشد، اما دل الا مگر میگذاشت در این فکر باشد که روزی سگش میمیرد آخر الا از آن آدمهایی بود که هیچ وقت نمی‌توانند پایان چیزی را قبول کنند. فرقی نمی‌کند آن چیز یک دوره باشد، عادتی قدیمی باشد یا رابطه‌ای که خیلی وقت پیش تمام شده. الا نمی توانست مرگ آن چیز یا پدیده را بپذیرد. هیچ جوری نمی توانست با تمام شدنها ها رو در رو شود. حتی اگر آن پایان که وانمود میکرد بیندش، می کرد نمی و جلوی دماغش سبز می شود. خانواده روبینشتاین در آمریکا در نورتمپتون در خانه بزرگ و کرم رنگ، به سبک ساختمان های دوره ویکتوریا زندگی می کرد. ساختمان با آنکه به تعمیر احتیاج داشت و بایست دستی به سر و رویش می‌کشیدند، هنوز هم با عظمت بود. پنج اتاق خواب داشت، گاراژی با ظرفیت سه ماشین، کفپوش پارکت چوب گردو و درهایی به سبک فرانسوی. به علاوه توی باغچه‌اش هم یک جکوزی فوق‌العاده بود. کل اعضای خانواده از فرق سر تا نوک پا بیمه بودند. بیمه عمر، بیمه اتومبیل، بیمه سرقت، بیمه آتش سوزی، بیمه درمانی. علاوه بر اینها حسابهای بازنشستگی داشتند، اندوختهی برای تحصیل بچه ها در دانشگاه و حسابهای مشترک بانکی. علاوه بر خانه‌ای که در آن می‌نشستند، دو آپارتمان لوکس هم داشتند. یکی در بستن و دیگری در رودایلند. الاو و دیوید برای به دست آوردن اینها خیلی زحمت کشیده بودند. عرق جبین ریخته بودند. تصور خانه‌ای بزرگ که در هر بچه بچه‌ها شادمانه بدوند و بازی کنند، و از فر اجاق گازش عتر شیرینی زنجفیلی و دارچینی پخش بشود ممکن است به نظر بعضیها نوعی کلیشه بیاید اما در نظر آنها ایدهالترین زندگی بود زندگی زناشوییشان را بر پایه این هدف مشترک بنا کرده بودند و با گذشت زمان اگر نه به همه بی بیشتر خیالاتشان جامعه عمل پوشانده بودند شوهر الا پارسال در روز ولنتاین به او یک گردنبند الماس به شکل قلب هدیه داده بود کنارش هم کارتی گذاشته بود با عکس بادکنک و خرس کوچولو الا عزیز زن آرام و خاموش و با و صبورم چون مرا همانطور که هستم پذیرفتی و همسرم شدی مدیونت هستم شوهرت که تا ابد دوستت خواهد داشت دیوید الا به هیچ کس به خصوص به شوهرش نتوانسته بود حرف دلش را بزند و بگوید موقع خواندن این سطرها حالی بهش دست داده بود انگار دارد اعلامیه ترهیم خودش را میخواند با خودش گفته بود لابد وقتی مردم همین حرفها را پشت سر جنازهام میزنند و اگر صاف و صادق باشند باید این حرفها را هم اضافه کنند. تمام زندگی الای بیچاره خلاصه شده بود در راحتی شوهر و بچه هایش. نه علمش را داشت و نه تجربه اش را تا به تنهایی سرنوشتش را تغییر دهد. هیچگاه نمی توانست خطر کند. همیشه محتاط بود. حتی برای عوض کردن مارک قهویی که می خورد بایست مدتهای طولانی فکر می کرد. از بس خجالتی و سربزی و ترسو بود شاید بشود گفت آخر بی ارزگی بود درست به همین دلایل آشکار بود که هیچ کس حتی خودش هم نفهمید که چطور شد الا روبینشتاین بعد از بیست سال آزگار زندگی زناشویی یک روز صبح از دادگاه تقاضای طلاق کرد و خودش را از شر تأخل آزاد کرد و تک و تنها به سفری رفت با پایانی نامعلوم اما حتما دلیلی داشت عشق الا به شکلی غیرمنتظره عاشق شد عاشق مردی که اصلا فکرش را هم نمیکرد و به هیچ وجه انتظارش را نداشت آن دو نه در یک شهر زندگی میکردند و نه حتی در یک قاره حتی اگر هزاران کیلومتر فاصله میانشان را در نظر نگیریم شخصیتهایشان هم خیلی با هم فرق میکرد انگار یکی شب بود دیگری روز طرز زندگیشان هم زمین تا آسمان فرق داشت بینشان پردگاهی عمیق بود اینکه دو نفر که در وضعیت عادی به سختی میتوانستند یکدیگر را تحمل کنند اینطور در آتش عشق بسوزند پدیده‌ای غیرمنتظره بود اما پیش آمد و چنان سریع پیش آمد که الا حتی نفهمید چه بر سرش میآید تا بتواند از خودش محافظت کند البته اگر آدم بتواند از خودش در برابر عشق محافظت کند عشق یکباره از قیب مثل تکه سنگی در برکه راکد زندگی الله افتاد و او را لرزان، تکان داد و زندگیش را زیر رو کرد